الحمد الله علية وسلم لله رب العالمين الله الله الله تعالى خير من الله الله الله و این تبدیلی که در کتب اصول متخصیر مطلب راهی شده که مراد جدی و مراد استعمالی از فری میگه در موارد رو بیان بکنیم که در این حال هم بیان اصل این مراد جدی است و دو تیفیت دلالت در مراد جدی که آیا یک دلالت لحظی و است یا یک دلالت سیاسی؟ است و مسئله دیگه عرضش اونها در استنباتات و مسئله دیگه همی که خایم اقایی میشه علت اختلاف فهم فقه ها هم روشن میشه چون بحثی به مراد جدی علت این که فقه ها در طول تاریخ اسلامی توی یک روایت اختلاف فهم میکنن چون تحریف که ما روی زواهر میکنیم اینشالله اونجا هم اون نکارات رو شد ما دیروز تا شهار مورد از تشریف مراد جدی رو شدیم مورد پنجم یه استلاحیست که قایی ما بردیم به یعنی کار بروزیم به اسم استپتان استپتان یعنی اینکه یک معنایی در کلام به اصطلاح ظاهر نیست اما تحمیده میشه. حالا چون آیان در مواردی رو که در اینجا مطرح میکردند بس که مثلا ماله برای یک روشن وقتی بازی محص میشوند که دلالت روجوب یک شکل روجوب مقدمه یا به مطابقه است یا به تزمان یا به افتزام دیشاتی ماله کتب قدیم درد ما به مطابقه به و تزمان و افتزام دلالت سریع سریع مستقی مباشه سریح, سریح رو و مستقید و دومی و استفتام به جایی التزام و تزمون بلدار یک مفهوم عام میست شامل تزمون و التزام هر دون میشه اصطلاح ماهی این دلار بحث درست در کلام بحث بسیار عریض و قوید هم تحریش احتیاج بشتاری و هم استظهار نهایی برای موادس قانونی هدف ما این هم <تصفح> الان چه زیر نداره شنش بعد فرقش با تفسیر ارد و همینا نموحب بگیم اما سای استفتان انواع مختلف دار اگر میخویم هم کدوم وجود داره قرار بدیم اخصار موضوعیات میشه ما با عنوان یک جامعی حالا قصر پنجم قرار رو میدیم نموه و این استفتان یک حد قرفی داره, داره که خیلی واضحه من حد دو عرفی عبارد از این است که بر اثر استعمال یک کلام در یک عرف خاص کلام غیر از جهت لغتی خودش یک مفایم عرف خاص رو با خودش بر میگاره از این منبال مثالش شما لحظه آشورا و اولا این استفران در مفردات هم میگه راسته در جمعه میان در مبدول تصوری هم پیدا میشه. شما در میان چیه؟ کلمه آشورا رو از کوچیکی از زنین بچهگی شنیدید و اوزا و احوال و جریان هستی که با اون مرتبط بود و اعزادانی و سینه زنی و آلا پرسون پرنزنی و زنگی و وقتی به شما کلمه یا آشورا گفته میشه خواهی نخواهی این معالی در ذهن شما میاد به لحاظ لفظ لفظ آشورا یه برز نداره اما وقتی گفته میشه خواهی نخواهی روز ده ما اگر به شما بگیم روزه آشورا، سلم آشورا، یعنی اینطور طور که سه روز دهام محرم رو روزه دیگه در این ذهنیت شما میاد و پیلی لفظ آشورا اگر بخواییم شما اون مجموعه معلومات خودتون و این نفسی خودتون رو این لفظ بخواییم تحلیل بخواییم یک کتاب میشه. لفظاش آشورا ما یک کتاب میشه. اما همین لفظ آشورا رو شما به یک انسان رو سن نبیدید قطعا اون مقایی به ذهنش نمیاد اون معلومات فراوان و اون حالات فراوان، قطعا به ذهن اون نمیاد حتی تحجیباورتر ترسیم شما در ارخی یهودی یک خیلی روزه آشورا صبح آشورا اصلا به ذهن اونا روزه ده هم هم نمیاد چون روزه آشورای اونها نمیدونم مطلعی دانه صبح آشورایی که یهود اول گرفتن. از زهر روز نهم هست و کروز روز دهم. ده روز شنبه. سORY اشتباه کرد. ولی فعلا اسلام روز بعد داشتی یعنی از از زهر روز نهم دیگه از آن نمیخورن از خاص از روز نهم از آن نمیخورن شد میخورن. از وایل نریان سوم. اول این اجازه دادی چی؟ از شاب بیا من اجازه داده بود. این یعنی بیا قبل از ماه رمضان باید مدینه شدن اون ماه سال اول روزه نگردن آشورا که شد پرسی درمی بخون یهود به خاطر نجات هست سال یه تفسیل درم روزه گردن پیغمان نحنه احق و بهتباع با اون سال اون روزه پیغمبر گرفتن وقتی ماه شعبان سال دوم ماه رمزان فرض شد دیگه آشورا برداشته شد با فرض ماه رمزان سه ماه آشورا و سه ماه دیگه برداشته دیگه در یک ذهنی یک جون می همین همی سوما آشورا در اصطلاحی همون جور دیگه بیشه این اصطلاح همون بسید چی گیر باید؟ این الان به اینش نهان ارتکازات میگم پرستقات ذهنی زمینه های ذهنی ما به عنوان جامع اسمش رو اسپیپسان میزنیم عنوان جامع که شامل دیگه که و متاق تزمون و هنوا اینها بشیم پس کلام حتی یه مددول تصوری حسولاً ولی از مدرور تصدیقی همیشه داره یک استرطانی هست این داره اما تو شداد و داره این نکته خیلی مهمه مثلا پرشم شما اون تصوری سواجه به امامت و احنی اول دارید و داری رو باید تو بخصایی کلامی تو مناقشه میدین که مثلا امر اینجور نبود اصلا اون مقهوم اماماتی در ذهن شما هست در ذهن احرسون نزواجه به امر نیست نیست به کار میده. اون امامت که که شما فرض میکنید اون مقام می اون که در ذهن شیعی راجی به عزر زررا هست در ذهن سنی که به آیشه نیست آیش آیشه خیلی احترام میکنند اما اون تصور مثلا کسی نقم اگر در تو سنی که بگرم به نور ماهر اما صورت ربایت ماهر هست ببینیم تفضل این ذهنیت یعنی این استفرام خودش یک مسئله بسیار مهمیه ما وقتی صحبت افراد اون ذهنیت ها و سابقه های ذهنی و لایه های درونی ذهن رو اون رو باید تفکیش بکنید این اصل رکل در لغت و در قد خیلی روشنه مشکلش که های سهر به قانون بیاند چون محفوظ اینه که به لفظ نیستن اون تصوری که شما از آشورازی هست کلمه آشورای که دیست آرزا رو زن. کلمه آشورا مقدار دلالت مستقیمش به تعبیر من یا مباشرش یا دلالت سریحش دوزه دهم این آشورال اما در دینه شما دنباله یا آشورال روشی یک کتاب قرارداد. این قسمت رو اسم چیمی زید استفسان یعنی این معانی در اون وجود داره فرقش هم با تفسیر در کجا در تفسیر اون رابطه واقعی بود شما منتفض باشید یا نداشید وقتی میگه این دو لیوان آب بخور رابطه این دو لیوان آب با مزاجین شخص واقعی است اما اینجا رابطه واقعی نیست این رابطه بر اساس گذشته گذشت زمان درست شده اونجا رابطه ارادی نبود خوب دقیق بکنید اون مقدار ارادی چقدر بود دو لیوان آب بخور این ارادی اما رابطه این دنیوان ها با شما اون واقعی بود ارادی شما نبود ولذا ازا فارغ بین مدلول لفظی با دلالت سیاقی هم همین می کنید واقعی در تفسیر یک واقعی روشنید یک واقعیتی مثلا چون سوال فرمانی. در این که ما اینو با تفسیر جدا کردیم چون در اینجا این هم ارادیه یعنی این هم بعد از گذشته زمان در ذهن پیدا میشه. و در افراد هم تر می کنه. یک شیعه تو باشه شیعه تو باشه باز آشورای ذهن رو با آشوری که در قومه میکنه. می کنه دقیقه این لذا این قسمت استفاده از قسمت های مهم کلامه اینو خوب دقت بکنید این قسمت تا یک حدی ارادی است فرقش با تفسیر واضح اون وقت این ارز جهات مختلفی داره یکی همه جهت ارفی داره که, نداره که این تو مواحث زبان شناسی ندارم به اسطلاح مزهر همونتی از اینجور حرفا به درد اونجا میخوره ما بخواییم لایه های ذهنی رو باز بکنیم رو روابطش رو بخواییم اینا به درد اونجا میخوره. اونی که به درد ما میخوره تو اصول بحث قانونی نیست من از کردم ما در موارد لغمی خودمون هم تحلیل بدین و هم در دید استظهار میکنیم استظهاری که در راه حجیت قرار میگیره این را دکت ما هم تحلیل میدیم هم باید استظهار بکنیم هم استظهاری که در مرحله نهایی به عنوان حجیت قرار میگیره که استظهار بشیم مراد جدی من ضمن طلبی مراد جدی شهر حالا من ایکی دو نمونه شد در اصول خدمتون ارض میکنن که روشن بشه یه بحثی بود در ارصال همی که شما تو ماله لومه اینجورا تردیس رو فرمایی در لومه لاغل و کتاب ماله افتلاح نسبتا زیاده میفرما در حکم جوریس لیل اطلاح همستو که به اطلاح میکنه مثلا میگه اگر شما شاه رو مثلا هون مرداری که منظورهات به هست کشیدیم اطراف چاه و اون دل و اون ریسمان اینا پاک پاک میشین لی در تفرکر و اصولی قدیم این رو اطلاق میگرسن. خب بودن بازم توبیه شدن. خب اینجا اطلاقی که من درمیشونه واسه من در این روشنگه ده درم آفجیبی پاک میشه. این چه رفتی به لده شاهده؟ این اطلاقش بودی خواست. این چه رفتی به ریسمان داده؟ اصولی میمترخیره با مثل مقام نایینی. این کلمه اطلاق و بردرستن گذاشن اطلاق مقامی. من اطلاقی در ثابع در کتاب فقه سابق میامند تبردیدش کردم به اطلاق مقامی چی می‌خوام بگم می‌خوام بگم این اطلاق لفظی نیست لفظی نیامده این اطلاق مقامی یعنی وقتی امام فرمودن مثلا این حیوان تو شاه افساد نجس شد آب بکش خب طبیعتاً این سوال پیش میاد حالا که من آب کشیدم اون در اون خور نجس خوردم که دردی که دردی اولش بالا کشیدم یه نظر از اون راسم از لبه شاه ریخته که مستقی ریسمان به اون آب ریخته خورده دن به اون راسم آب ریخته اطراف ممکن از اون را رو آب اون را آب بکش امام از شاه آب بکش نفهموند که را آب بکش اگر اطراف لبه شاه آب ریخته بود اون هم آب بکش من ونا این اطلاق رو نبیم اطلاق لحظی ببینید اینجا مجبور است با مجبور جدی فرمان میکنه همون روایتی که میگه پنج در آب بکش این مفادش اینه که لبش خواب باشه حالا این چه جوری میشه مراد اون اینه که اسم رو بگیم اخلاق مقامات اگر چه در مه اگه تبیینش فرون زیاد داره اطلاق زیاد نسبت نسبتا که مرادش اخلاق مقامی لحظ نیست همون مثال دی که در کتاب اوربا اومده اگر توش اثیر بی توش توی اینم بیگو بود جوشی خب آب میره پایی این تا جوشید نجس میشه خب بی دیگر میشه این جوشی سازه هاو شلسی شد روایت نمیگه که asker پاک خود دیگ نجسی که ملاقی با نجس بوده خود ناجز میشه امام میگه باه ذاو شلسی خاصون پاک میشه الله خیر خدمت شد بنابراین از طهارت اونجا سر این پاک میشه آیا میگن به مقامی دیگه هم پاک میشه. این را اگر ما بخویم ذابس مندش بکنیم در مس موارد سوژیه، بازیکن یک نوع استبتانه آیان تعریف کردن به اطلاق مقامی یعنی میخوایند چیکار بکنند، این را از مدلول لحظی خارج بکنند، این مدلول لحظی نیست، اما در این حال، خودکار بکنیم، از قبیل تفسیر هم نیست، از قبیل تعریف هم نیست. از قبیل دلالات سیاقی هم که ارادی نباشه ارادیه یعنی امام با همون بیان که میگه زهاب و سلطه این پاکش میکنه با همون بیان میگه دیگه هم پاک میشه نه فقط اصیر پاک میشه این بحثیز که الان اینجا باید مطرح بشه این تحلیل بشه این اصلاح مقامی روشنشد درسته؟ اصلاح مقامی از این موارد است که یک نوع استقبال توش خوابیدنشی یعنی, یعنی امام وقتی میخند بفهمند بیت پاک شد پس خوابید دیگه هم پاک شد. همین این نکته هم نیاز می‌جاد. آیا این جزء مدل لحظی است و اگر جزء مدل لحظی نیست اراضی است یا نه؟ یک مثال روشنشد درسته؟ یه مثال عام هم داریم حالا من چند تا مثال میذارم تا روشن بشه یک مثال عام هم داریم هم بحث ملازمه تلازمات و سازانز در اصول بحث مقدمه واجب بحث مسائل نحوی از مسائل جدی اصطلاح ببینید یک خط بکنم اینجا اونجا وقتی مولانا خودش پدر به پسرش میگه نان بخرد ببینید تو این نان بخرد خابیده بازار برو حالا فرض خونش فاصله داره توش خابیده ماشین تواف شد بکر کنیم اون یک مثال موردی بود این یک مثال کلی یک آیا تو نام بخر خابیده این دو اگر خابیده به حد مدول لطفی می یا نه شاید دیده باشین در معالم مبحث مقدمه زد مقدمه واجب و زد رو تو بحث الفاظ آوردن به از کتاب اهل سنن ازدهی مثل مرمومه آز... مرمومه آی آشانس نیستان این که اصلا کرده ملازمات عقلی رو جدا کرده مرمومه اصلا نمیشون اما در حال فقط که بحث مقدمه گفتن که این بحث لفظی نیست ولی اصولی تو لفظ آوردن عرض کردم من اینی که آقای اصولین که لفظه یک مشهور اصولینه و الا اده از اصولین اهل سنت و زیگی ها اصلا بحثو چون مبارس الحاث کلن نه بردن یک بحثی قرار دن به نام حف و حقیقت حف و اصحان حف اینو اونجا آوردن پس این بحثو مثل اما آشانسه انسان چون ما آوردن مثل صاحب معالم تو موارد الفاظ خورده. بعضی از هم گردن تو واسطه اعتباس قانونی نه به بخ... عقل دادن نه به اخکام عقلی دادن نه به اخکام لفظی دادن این توضیح و تحلیلش چیه اصلا, اصلا مطلب کجاست اون نکته تحلیلش چیه اون نقطه تحلیلش به نظر ما یه مقدارشو اینجا برمیگرده دقت بکنید. اون بحث اینه که وقتی ما در جامعه خودمون وقتی نخواهیم کار انجام بدیم به طور طبیعی مقدماتی داره یه رابطه بین مقدمات و اون عمل پیدا میشه این رابطه که پیدا شد تا اسم اون عمل این مقدمات هم به ذهن ما میاد این در کجا میاد در استبتال میاد یعنی به طور طبیعی وقتی من نان ناندخرت خالصین یک نانوایی سواد سوار ماشین بشن به فکرم میاد که واس مثلا میگم آه تو ماشین بنزین نداریم چندا میگه من مثلا نان بخر حالا دقت نکردی اگر نه خالصین نانبایی جوری که من با تلفن میتونن بهش تماس بگیرن دیگه صحبت اینکه یعنی که ماشین بنزین داره من ترسی نداره حالا خالصین خط تلفن خاصی بدهی دردی بابا نداشت میگم آ خط تلفن خاصی نمی‌تون تماس بگیره پس یک نوع فهم غرفی هست اون تهم غرفی افتداری منشعش استبتاله. یعنی بر اثر گذشت زمان یک رابطه ای ما ایجاد میکنیم بین نان خریدن و بازار رفتن نان خریدن و توار ماشین شده پس این نقطه که در برادز ظهوراتش میاد اینه ببینید ما تحلیل هایی که می باید کاملا واضح و روشن باشه من توضیحش ارز کردم حالا اینجا یکیه که می توضیح می ده. ما در حقیقت اینجا باید اینجور تفکر بکنیم یعنی اونی که منشع شد بحث اصولی بشه بعد یعنی در اصول یک نحوی بعد ترقی پیدا بکنه بره بالا من تو همین مرخص مقدمه زد خدمتون ارز می دم تا روشن بشه پس بنابرای هنگر کسی این طور بگیم. من یک طرح اجمالی بدم تو بعد توضیحش توضیحش یه سابقهن دادیم تا یه حدی روشن بشه یک کسی این طور بگه مراد ما از مدلول لهذی نگاه بکنید به مقدار انفعال شخص خوب دقت کنید مفعول لهذی چی؟ هر اون یکی کتاب لغت مراجعه کنیم مثلا نان یعنی نان بخرم با یعنی در مقابل باج به خیلی هم رو از خریدن در اینجا آیا این رو باید به لغت مراجعه کنیم یا نه ببینیم طرف چه مقدار انفعال از کلام داره اگر اون مقدار انفعال از کلام فیضا میشه مدلول درستی یعنی وقتی میگه نان بخر پس اون ماشین بنزین نداره، درسته میگه آقا ماشینم بنزین نداره یعنی چیهی یعنی از کلمه نان بخر این معنا به ذهن شما آمد ماشین به برو رو بازار نام بخار این معنا به ذهن آمد دلیل شبینه ای که میگه بریزی نزده میگه نمیخون مقدمه رو انجام بده احسن سن احسن سن یعنی دو چیز رو اینجا عرف میفهمه حالا اجازه بدی یکی تلازماتش رو میفهمه یکی هم تا آنودهاش یعنی اگر که دردید بچه خوابیده ببینید دفت کنید میگه میگرده چون ها گختم نان دفت ببینید یعنی همون کلمه نان دفت کافی است برای این که نخواب یعنی مطالعه نکن مشغاته ننبید خود اون کلمه کن روشنشون این تصور میخوام خب دفت بکنید این تصور اتدائی بسیطیمون که در اصول آمند لذا محصه مقدمه یا محصه نهی رو تو مباحث الفاظ آوردن سره شد لذا الان درست اشاره کردم از داره بردانی که بردانی که بردان شده شد در معالی دلالت وجوب به وجوب مقدمه یا به مطابقه یا به تزمان یا به افضا ما به جای مطابقه که نانست رو بخشم مطابقه یه میجیم اون داره که مطابقه بگیم به به جرد تظرمان و هم گفتیم استبتان حوض نه حالا اصلا ارتضام را اینجا یا جایت آن اون بوده گفتیم استبتان پس دلالت مستقی بوده مستقی بیمید ناید باشه از این یعنی مثل مرموس آن ها گردن به یه ما به روی اون بودیم روی این دلالتیم رو و اص... معیار رو توضیح ندن در قدیم ما بیان این معیار اینه مقدار فعال انسان به کلام سوال مدلولتی شروع میشنیم مردول لفظی به مراجعه به لغت نوعی میشه سیم یا مردول لفظی باید تو جامعه به این حساب تفسر و انتعال شخص از سلام این میشه مردول لفظی و میشه ارادی میشه اختیاری یا شکریه شروع میشه ظهور دردار ظهور میشه عجب حال نوعی میگه شخصی همونه شخص که من منفض نشدم به این حساب معرفی اینه که به خاطر از نان بازار رفته نه عنوان مقدمه‌ای که من سعی می‌کنم بشه مقدمه چی عنوان مقدمه‌ای که من که از تلخیده شده است باعث میشه که که از سابقه مالی شده دیگه دیگه قابل تطبیق نه اون مشکل فهم از یاد باعث اگر من خود مطلب روشن بشه مطلب روشن بعد اون مشکلی که خوب دقت کنید چی شد این تا کجا اون وقتی این نک اینجا پس اونه که در ابتدا دقت میکنه در ابتدا به صورت خیلی واضح و روشن منچ شد این بحث من عکس مواسه اصول به سر رسمی به سر رسمی یعنی در خدمات ذش از اون اووا قمه سهحبه بوده اه سهاده بودیم و که تقریبا به ساعت رسمه او آخر قرن دو گفتمه سال سال 1979 -19. یه اصول پذه تو شده پذیم و شکلی به خودش میگیره پس بقیار با این قراران ما رو این حساب کار رو تا حدید سری روشن بکنیم این بحث این که در کتاب ما آلم و دیگران و اهل سنت آمدن بحث تو الفاظ قرار دادن تو مدلول لحظی اون نقطه این بود که آمدن امتعال روزیدم وقت اینجا میاد نکته دیگه شروع رو کنیم هی پشت سر هم با باید بکن آیا میاره در سهم کلام همون انفعاله یا ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم بگیم مثلا درست انفعاله یک انفعال اولیسته که انفعال ساندی تقسیم بندی بکنیم این تقسیم بندی بعد به کجا منطقی بشه بیا تا توی حجیت ما رو کمک بکنه یعنی صدیه وقتی گفت نادخه من انفعال پیدا میکنم که سوار ماشین م بشم از همون انفعال م هم بدمرو نخوابم وک این انفعال رو دست بکنیم بکنی دقت انفعال اولی انفعال ثانوی مثلا خود نانبخر رو انفعال اولی بگید. بازار بازاربروب انفعال ثانو هر دو از باشه دست این دستبند گذاف نیست جذاف نیست این دسته بندی به اینکه بیاد تو بر تو مرده استدهار و بیاد تو حجیت و تو آثار قانون این نقطه اصافه اینجا هست نمیده قطعه می یه دسته بندی که بعد ده تو تا حجیت و تا قانون تا بست قانونی. و که این دسته بندی بگیم اینجور بیاری. این مثلا فقط عرفی صرف نیست این یک مطلب ارخ خاص هم هست یعنی ریشه های تحلیلیش به ارخ خاص اول تحلیل بخوایم بعد استظهار بکنیم حالا این تحلیل درسته یا نه بعد دارتیم به مرحله استظهار در ارخ خاصیم اینجور بگیم ما ببینیم نظر ما راجع به خود این اعتبار چیه همین که میگه نان بخر اعتبار کرده قانون گذاشته نظر ما چیه چون در زمان در زمان سود روایات جب عمومی جب عبد و مولا بود او لقد یعنی وقتی شعر بگی از ایواللز آمن و عقیم و که این مولای به عدیدش خطاب بکنه این فرقی باقی در جب عبد و مولا توضیحاتی داره کساب قرارم هستن که این بحث اخیرم هستن. یه نکته‌های های قانونی داره من می‌خوام به اون نکته قانونیش کار بکنم چقدر از نکاتش های سابق بخشن یه نقطه مهم در رابطه عبد و مولا که در نظام های استبدادی هم همینه اصلا بحث استبداد و مشروط هم فیلان برای همین شد در اون نکته قانونیش قانون و اعتبار جدای از بولا نیست عبد جزی از مولاست اعتبار هم جزی از مولاست عرض نمیکنه یک چیزی جدا از مولاست به اصطلاح امروز ما ترکم شخصیت مولاست شوهای شخصیت مولاست و لذا خود اون اعتبار یک امر مستقلی نیست چون اینطوره چون شوهای شخصیت مولاست ذهن عبد نمی‌تونه تحلیل‌ها رو به عنوان جداش بکنه ذهن عبد میره خواهی نخاری و مرحله عمل نام بخر یعنی وظیفه من آوردن نام پیش مولا سوی اون دنبال این کار میده تقرد کردی یعنی از یک خطاب از یک اعتبار ذهنیتش به کجا میره میروه امن چون مولا نام میخواد هر که نیست عنوان نام که نیست واقع نام میخواد این دو تا نقطه اساسی آره این دو تا نقطه هم که بازش می‌کنه تا رو بچند در مقابل رابطه عبدال مودان یک رابطه قانونی ما داریه یک قانون جدای از شخصیت مودان است این رساله تنبیه و نمیه نگاه بکنی و اصلا مخصوط را همه از درست چون استداد این بود که شاه هرکی فرمود میشه با کنه باخیی تموم شد تا علا در مقابل مشروطه برای این درست شد که ما یک چیزی به نام را قانون داشته باشیم این خارج از شاهه این خودش یک واقعیت به بخط بکن خودش یک واقعیت هست. همه باید در مقابل اون تصریم بشن این خودش این نکته یه ای خودش یک واقعیت لیکن این واقعیت در به اعتبار نه در محن خارج این خودش یک واقعیت هست. دیگه ترکب شخصیت مولا محرح نیست شعاه شخصیت مولا محرح نیست پس یک تفکر اونجوری میشه یک تفکر اینجوری این, این دوتا دو تفکر در این تفکر دوبوم اضافه بر استقلالیت قانون یک نکته دیگری پیدا میشه که ما سابقا تا در این مباحث حجیل از اول شرح من احس کردم وقتی میگیم تنجیز تکلیف وقتی میگیم حجه مراد از تنجس چیه؟ اینو من توضیح بدادم. چند بار انطور توضیحیدم؟ وقتی ما پدر نام بخره، چی تنجس؟ تنجس نمی شه. هر نام دخر به به طور طبیعی خوب دفه. دو تا قرارداد داره، دو تا قائل داره علت قاعد. یک قرارداد ادنا داره، یک قرارداد اقساط. اعتبارات هومی یک کاره ادنا دارند، یک کاره اعصاب. اونو خوب دکاتو بکنید کاره ادنا یعنی ایجاد دعای و انگیزه در کار. این قصیهه، این تخلوق نداره. کاره ادنا تخلف نداره. تا گف نان این کافی است برای فهمیدن؟ کاره ادنا با خطاب کاری نداره، تشكیک نداره نبود؟ شنیدی؟ تشكیک با خطاب نداره. یه قرض اقصا هم داره قرض اقصا اواده ننخوره که اصطلاحا ما بهش مقام عمل این تفکیک داره اون تفکیکی که از در کتاب اینجاست یعنی ممکن است بچنان بخره ممکن نخره پس در قرض ادنا تفکیک نیست تخلف نیست در قرض اقصا تفکیک هست شد اون قرض اقصا عمل فعل اینا رو قانونی قانون است که روش کار می‌کنه خیلی برسید. ساده است ولی واقعا خیلی سازنده. ما این سوال رو میکنیم وقتی کسی گوه به ارزش نان قرض چیه ما چجوری در بحث قانونی ما کار بکنیم؟ رو قرض ادناه حساب بکنیم یا رو قرض افسار حساب بکنیم؟ اکثر من صادلان در این مناظره اول بحث در معروف معروف اصلی شیخ یه لارده لا... لا که میجو به عمل حراسل یعنی مرموم شیخ و کسانی که بعد آمدن میلیار در حجیت و عمل گرسند تصور شده کن اون مواردی که در قرد سالا کنده شده شیخ قرمون بار اینشاهات رو بگم کردید اونا آمدن تو حجیت و عمل بساط کردند. و نسبت به این قرد و عمل اما ما از هر ظاهر صدق قورسی و اوغلادی این است که می رو ترجج به معنای خرج ادنا حساب بکنیم نه خرج اخو دو سزاویه شد دو سزاویه که کلا فهمید پس در باب خود که کردیم در باب دو نکته خرج باذرفا قانونی است یک در باب قانون استدلال نداره ش... شع... شعاع شخصیتمو است دو در باب هم قررز اقصال حاض میشه که آوردن نان باشه اما در نظام قانونی در نظام قانون اقلا قانون رو جدای از مقلن نحساب میکنن یعنی قانون شاه شاه از قانون جه اما وقتی جلگه همه حتی خود شاه هم باید از این نقطه قانونی اینه. دو در نقطه قانونی مقدار جز همون قررز ادناست یعنی ایجاد داری ایجاد انگیزه نه عمل خارجی حالا اگر این تحریل روشن شد روشن میشه در ماب اگر ما مثلا وقتی گفت نان شاربو یا ایهالدین آمن و عقیم و سلام خوب تعمل کنیم. اگر این رو مثل رابطه عبدالمولا مطرح بکنیم نتیجه این میشه یک این شعال شخصیت مولاست دو هدف عمل از در خارج و چون عمل در خارج لوازم و معانداد داره این عمل است که تلازم و تا داره یعنی وقتی میخواد نان بیاره لوازم داره مثلا سوار ماشین بشه معانداد داره نخواده این عمل که تلازم و تعانوز داره و همین موقع آخرش بگیشی بزور اول وقتا می کاریارش الان تو تحلیلی میخوام بگم که این آیا تاثیر در ظهور داره یا نه اون آخرش شما یه کلی چند اما اگر قانون شد در نظام قانونی خوب دقت بکنید اون نظام اصلا در نظام احسن اجازه فقط یک نقطه اجازه بحث و رجل به مقدار ادرازه اون اون نه میدونم میگه بیار اونی که جنبه قانونی داره ببینیم اجازه بدیم میدونم می اجازه بدیم در بحث قانونی اون مقداری که اساسا تخلف نداره همون تنجز و ایجاد داریه من میخوام اینو بگم. قطعاً قرار از عقصه آوردن عمله نیمون با بگرد عمل چرا؟ هست دیگه چرا؟ درقص بکنین بحث به هم میخواد میترسم من تمام بکنم در شما ایسپاگفت را بگرد اون ترکیب بیره که خیلی درست از اون صببه علوی شد در... در این تحریک خوب نمیدم درقص بکنی و چون اعتباره و در اعتبارات آن دفرق بکنن معیار اون مقدار ابراز نه واقعه. چون معیار مقدار ابرازه دیگه نمیاد به تلازمات و تا نگاه بکنه یعنی وقتی گفت نان دفرق صحیح نان خریدن بازار رفتن میخواد نخابیدن درست درستی قبول اما تو اعتبار قانونی نیست در کتابه های مترخیر و اصول شیعه وقتی مثلا قانون گفنان بخر درست مترخیر بر بازاره لیکن این مترخیر بازار هم در ذهن آمر هست هم در ذهن آمر هست مأمور است. اون به ذهنیتشون استفا میشه این تحت دایره علب نمیاد روشنشون نقیبنید در اعتبار قانونی چون اعتبار قانونی خودش یک واقعیتی داره قانون این یک دو باید ابراز بشه تا ابراز نشه تحت دایره قلب نمیاد ولو در متن واقع هست ولو در متن واقع تعارض هست اون در متن واقع چه خودش محفوظه چرا چون اون متن واقع تأثیری به ما نداره اونی که تاثیر داره قانون یک امر مستقل و در این حال قانون به این مقداری که ابراز شده قانونه، اونی که ابرازش چیه؟ نام بخر همین مقدار قانونه. قانون چرا؟ اند مستقیم تا میتونه این, کار انجام بشه. این می داره که قانونی رو که من داره. با تو با تو من داره. با تو اگر استفاده نکردین، شما مثلا ماسه زن جمعه میکنن چرا میگه میگن نکنه جای منو میکنه این که هست که با جنین گفت میشه مولدی از کل در, در فرق بین مولدی و ارشادی همینه باید. حکم تقلیدی بوردین فرقش همینه اگر توش کیفر بود این میشه مولدی نبود میشه ارشادی این شرط پرمیشین مولودی واقعا مولودی نه اصوتن خطه وقتی میگه اتف... میگه اثبات ثایزه دوست اما میگه اثبات هم بکنید اگر اتفاض نکردیم ما خود رو میریم اتفاض بذیم پنج برای برای دونات جتون گیریم. این میشه چیفر تا چیفر برش آمد این قانون یعنی بحث یعنی زرچ پس خوب دفت اون نکات پنج و برشن شد این دو تفک کره. اینی که سابقین آمدن گفتن که این جزء مقدور لحظیست اونا در حقیقت تفسیرشون از احکام زینی تفسیر رابطه و مولا بود و در رابطه عبد دنبال عمل رفتن اگر دنبال عمل رفتن میگه خب ای این من گفته نان این نان دخر کیش میشم هست و آناداتشم همش میشه دیگه این نان دخره که من بازار باز دارم نخواهم اما در تفسیر قانونی بی این کار نداره تفسیر قانون میگه قانون یک امری دینی نفس مستقل و یه مقدار ابراز قانونیت داره خب بقیه چیزا تلازم واقعی داره خب بشو شما کار بشه تلازم نشه اون تلازم واقعی خوب دقت میکنه، اون تلازم واقعی قانونی نمیشه <تضح> <تضح> <تضح> تلازم واقعی برعاره یه ذره دقت کنید 290000 تکی می‌ذاره آها این که گفته اگر مقدمه واجه واقع باشه ترک مقدمه واجه منشعه مثلا فرصیم کیفر بشه این مرادشون همینه لذا ما به یک عباده دیگری هم سابقاً بهت رو مرزه کردیم ببین ما بین نان خریدن و بازار رفتن تلازم هست این جای بست نیست اعتبار قانونی هم به یک طرف کرده نان خرید سوال همین چون تلازم واقعی هست این اعتبار اون شرف هم بخوره شد بین نان کریدن و بازار رفتن تلازم کرد اعتبارم به یک طرف برده اون نان بگیم همچنان که در مقام واقع تلازم دارن در مده که بعد چهرگیان بعد جهرمون تلازم هست لذا بازار رفتن به هم واجب کرده یعنی این هم اعتبار قانون به جواب این روی مستقی چی درسته نظرمان ما, ما تحلیمی که این رو مستقی عبد مولا درسته اما اگر ما تفسیر قانونی داریم گفتیم نه آقا قانون همون مقداری که ابراز شده اون مقداری که ابراز شده به کرده چیشید بازار برو؟ پس اون قانونیت نمیده تلازم داره؟ تلازم واقعی داره اما این تلازم به مرحله جعل و قانون نمیرسه تا کو روشن شد این طور نیست که تلازم واقعی بیاد و رو اثر بکنه این طرز تحلیل مطلب اگر این مطلب تحلیل شود ما میگیم تو مقام استدلال میگیم تو مقام استدلال متون قانونی رو همین جور معنا میکنید یا ای الذين امنوا اديموا الصلاه یا رب قومتم الى الصلاه وجود لوجوهكم حالا شستن صورتش باید آب بخره آب نداره باید داره آب تریه کنه آب مثلا یک پیل مزمون دیگه اینجا قانون ناظر به اون نیست که تو آب تریه بکن اون یه صورتی که بشون دقیق بکنه اون اینکه پول بده آب بخرد یا نده اصلا اون ناظر به این نیست ناظر که نازره فلد به قصله و لذا اون مقدمات رو ما باید به حکم نه و اوغلاوی انجام بدیم. مشود دلیل هم قانون داره. همین. آیا این است به به مرحله استظهار؟ آیا توی استظهار مفعول لمزی هر دو میفهمیم مقدمه وجود مقدمه؟ یا نه چون تنبه قانونی یک قننه خاص خودشه ما فقط زل مقدمه رو میفهمیم یعنی در مقام جل به مقدمه کاری نداشته گذشته به اختیار خودمون گذشته به ارتکاز خودمون مثلا اگر آب خریدن خیلی ارزان باشه خب پنگام نیمون اگر واقعا گران باشه یا پول نداشته باشه خب نمیخوادی بقید کردید اون مرحله رو اصلا در تحرک قانونی نیامده و اصلا اینجا روشن شد مرحله استظهار یک دو مرحله نسبت دادن مجلول لحظی. بنابر تفکر قانونی مردول لفظی همون مقداری که ابراز شده مراد جدی هم همینه نه مراد جدی بازار برو بخر. این جزء مراد جدی نیست مراد جدی لفظی البته خود طرف اگر بخواد بخره بازار میره خوب گفت بکنید اما چون مردول لفظی نیست تو مراد قانونی هم نیست توی مراد قانونی فقط نامده هر انفعال طرف هست اما ما آملیم انفعال رو درجه بندی کردیم یک انفعال از قانون یک انفعال از واقع انفعال از قانون خریدن ها، انفعال از واقع بازار رفتن و نظام دفت بکنیم قدمای اصولی کردم بحث و کنن ریشه ها کنن هم ریشه لفظی شوشنگ کنن هم ریشه هم بحث تمام کنن آج میخواند تکیباً اشکرم